ای همانطور که در خبرها آمده بود دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و عرض استان تهران در اظهار نظری یادآور شده بود که در نه ماهی اول سال جاری دویست و ۷ هزار دیش ماهواره در تهران جمعآوری شده است. به همین مناسبت همکار گرامی هم خبرنگار باید غیرمرکزی خبر به یکی از این مراسم ماهواره جمع کنی رفته تا از آن گزارشی تهیه کند. همکار گرامی اگه صدای بندره دارید بفرمایید که الان، کجا هستید شما الو الو همکار گرامی الو, الو همکار گرامی بنده الان خب روی پشت بوم هستم دیگه با... واسه چی رفتی روی پشت بوم بیا پایین بچه می با... رفتی یعنی همکار با... گرامی چی شد رفتی روی پشت بوم همکار گرامی من به همراه یکی از واحد های پا... و الان برادرها در حال جمع کردن دیش ها هستن همکار گرم اه همکار گرمی چقدر دیش هست مگه روی اون پشت بوم همکار گرم این پشت بومه هنقدر دیش روشه که ما اول سکر کردیم اومدیم عجب. روی پشت بومه صدا و سیما و این بچه کردیم مطمئن شدیم دیدیم نه اینجا برج مسکونی همکار گرم عجب. خب به همکار گرامی از نیروهای انتظامی که همراهشون هستی بگو برامون باره به خیلی های باحالی هستن و در باور تکنیک تکنیکای خیلی متفاوتی به کار میبرن هم کاری گرمی یعنی یعنی چی تکنیک متفاوت یعنی چی یعنی دیش جام کردن هم تکنیک داره مگه اخیری هم کاری گرمی اختیار دارید اصلا من تکنیک های رو دیدم اینجا زکاستم تا حالا تو میدونه جنگ هم ندیده بودم عجیبه بگو ببینیم مثلا چی تکنیکایی که میگه همکاری کاری الان مثلا دارن با تکنیک گازنباری با دیش ها برخورد میکنن و پیش سایه میرن خوب مدل هایی دیگه البته هست تل گوچی شاخ بوزی بیگه چی بود برا در قویی برای این آقایش های نظامیه که برای حمله به بیش استفاده میشه همکاره گرم عجب چی بله؟ چ... چی میگی دست گلشون درد نکنه الو چی میگی چی با منی با چی درد کاره گرم ظاهران یکی از نیروهای برادرها در برخورد با یک دیش مجروح شده من برم تو خالی نمونه دیگه بله خسته نباشید همه گیرید با تشکر از توجه شما تا شب دیگر و دیشی دیگر و برنامه دیگر و همکار گرامی دیگر خدا نگه دار.